من خوب من باز بیا خوب من باز بیا را نفسی تازه کنی از جمین خوش گرها نفسی تازه کنی خوب من باز بیا را نفسی تازه کنی جمین خوش گلها نفسی تازه کنیم به دل و دیده و آهین ترابط بدهیم. تو که در باقه تماشا نفسی تازه کنی تو که در باقه تماشا در دو قسمت قبل شنیدید که سلطان شیرازی که در شهر پیشاور با خطابهای پرشور خود به تبلیغ مذهب اهل بیت که مسلام می با دعوت ادهی از علمای اهل سنت ایالت پنجاب شروع به مناظره با آنها کرد در قسمت پیش در اولین شب از مناظره دو مسئله مهم حدیث منزلت و آیه ولایت مطرح شد و جناب سلطان به اشکالات طرف مناظره درباره صحیح بودن سند حدیث و ناظر بودن آیه به حضرت علی علیه السلام با استفاده از منابع متعدد اهل سنت پاسخ داد در این بین شنیدیم که نواب عبدالقادر از سنیهای پشاور تحت تاثیر خطابها و سخنان خطیب شیعه قرار می‌گیرد در آغاز شب دوم مناظره حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسلام عمومیت حدیث منزلت را تشکیل کردند و آن را مخصوص و قذوه تبوک دانستند که پیامبر حضرت امیر را به جای خود در مدینه قرار داده بودند و حالا ادامه ماجرای شب دوم معلوم از قبله صاحب تا کنون اینگونه در مزیقه قرار نگرفته بودند. جساره است. ولی سخنرانی در میان عوام و و مطرح کردن ادعا کار آسانی است ولی حالا که باید ادله ارائه فرمایید سر در جایب تفکر فرو برده اید برادران برادران نظم مجلس را به هم نریزید حقیر تحمدن سکوت کردم تا آقایان هرچه میخواهند بگویند. بگوید این گونه وقتی پاسخشان را بشنوند بیشتر از رفتارشان شرمنده میشوند جناب سلطان البائسین همه چیز که با حرف درست نمی شوند حق با شما جناب شیخ عبدالسلام حدیث شریف منزلت که در آن پیامبر علی صلوات الله علیه ما را به مانند هارون برای موسی اند در دفعات متعدده و مراکز مختلفه از لسان شریف نبی اعظم شنیده شده قبله تاهم می شود این موازه را ولی نواب به غیر از زمان جنگ تبوک پیانبر یک بار در مکه مه. و بار دیگر در قضیه عقد برادری در مدینه مه. همین معنا را فرمودند گمان می کنم شما اشتباه فرمودید و استناد به منابع شیعه کردید که ما نمیپذیریم. خیر جناب شیخ اشتباه نکردم بلکه یقین دارم حلبی در اسیرت الحلبیه و امام عبدالرحمان نسائی در خصائص سوالی ابن عبی طالب و سلیمان بلخی هنفی در ینابی علموده و خارزمی در مناقب، این حدیث را در مکانهایی که عرض شد و حتی مواضع دیگر نقل قبل قبلی صاحب چگونه ممکن است صحابه این حدیث را با جنبه عمومی تلقی کرده و علی کررم الله و وجه را به عنوان خلیفه پذیرفته ولی بعد از رحلت رسول الله با این معنا مخالفت ورزیده باشند احسن جناب نواس احسن خواهش داره. مطلب بسیار خوبی پرسیدید که اگر هر مسلمان روشن ضمیری این گونه با مسائل برخورد کند یقینا رسکار خواهد شد بله اما پاسخ شما در خود حدیث است بنی اسرائیل هم به فرمان حضرت موسی که جناب هارون را وزیر خود قرار داده بود گوش نکردند و کمتر از یک ماه پس از رفتن موسی به کوه طور اسیر سحر سامری شدند و بر هارون شوریدند بله. بله جناب حافظ داستان کوه تور و تمرد بنی اسرائیل و قضیه سامری را قبول دارید؟ یا برای آن هم باید سند بیاورند؟ این ماجرا از ودیهیات است و در قرآن هم آمده است شما بهتر است به جای بازی با الفاظ اصل معنا را بفرمایید انصاف دهید برادران آیا تمرد بنی اسرائیل و شوریدن بر خلیفه منصوص موسا دلیل بر بطلان حقانیت هارون است یا جهالت و قرازورزی آنها را میرساند خب واضح است که جناب بر برحق بوده و مردم از امر سریع پیامبرشان خارج شدند. بر همین سبیل وقتی رسول اعظم رهلت فرمودند مردم به جای که به سراغ کسی روند که پیامبر بارها به خلافت او تصریح کرده بودند به علل مختلف چون ورزی و کینه های جاهلی و حب دنیا و ریاست حق را زیر پا گذاشتند و باطل را پذیرفتند اگر خلافت علی ابن عبی طالب ثابت بوده چرا پیامبر با این الفاظ و کنایت از آن سخن می‌گفتند و سراحتا به آن اشاره نمی‌کردند؟ کردند اولاً که حضرت رسول هم سریحن و هم کنایتن موضوع را بیان فرمدن. ثانیا اهل ادب می‌دانند که الکنایه تو ابلغ من التصریح بل آقایان کنایه گاهی رساتر از سراحت است چون مفاهیم زیبای دیگری هم در کنار مفهوم اصلی میآید. فرمودید که احادیثی هم وجود دارد که صراحتاً به خلافت بلا فصل علی رضی الله عنه اشاره دارد خواهش دارم خواهش دارم برای مزید اطلاع و بینایی بفرمایید حتما مهمترین آنها حدیث یوم الانزار است و آن روزی است که پیامبر خیشانش را به صرف تعام دعوت کردند و پس از صرف غذا که خود داستانی شنیدنی دارد آنها را به اسلام فراخواندند و در پایان فرمودند هر کس مرا اجابت کند و یاری نماید او برادر من و وزیر و وارس و خلیفه من خواهد بود و این جمله را سه بار تکرار فرمودند و در هر سه مرتبه فقط علی ابن عبی طالب برای یاری رسول الله قیام کرد آنجا بود که نبی اعظم فرمودند علی وسیع و خلیفه من در میان شماست البته این روایت این گونه که شما میفرمایید به ما نرسیده ظاهرا جناب قبلی صاحب برای تعالی مقام علی ابن ابی طالب به هر حربی متوسل می شوند. خوشحال میشویم که در این مکان سخنان مستند بشنویم. شنیدید، اید، و استنادش را نیز می دانید. ولی برای تنویر از هان من از کتبی که این حدیث در آنها مفصلا با ذکر جزئیات بیشتر آمده نام می‌برم این حدیث در مسند احمد ابن حنبل و تفسیر امام سعلوی و شرح نهج البلاغه ابن ابل حدید و تفسیر تبری و ده ها کتاب دیگر از اکابر علمای شما آمده است یعنی شما می‌خواهید بفرمایید نسب خلافت علی کرم الله وجهه حتی قبل از هجرت به مدینه صورت گرفته. بله جناب نباب این اتفاق در مکه و در زمانی اتفاق افتاده که حضرت رسول به فرمان خدا تصمیم گرفتند دعوتشان را علنی کنند پیامبر از همان زمان در میان قبیلهشان فرمودند که علی وسیع من است و این معنا را در موازه مختلف و با مفاهیم متفاوت تکرار کردند ولی افسوس صدا بهتر از دوستان نماز عشاء را بخوانند در این فاصله ما نیز استراحتی می‌کنیم ادامه ی مناظره را ننوشتند خب هر شب که جلوتر می رویم مناظره حساستر و طولامیتر می شود دیشب که شب پنجم بود در یکی دو جا کار به جدل نیز کشید چرا جدل؟ مگر قرار نبود کار با منطق و استدلال پیش برود قرار بود گیتا ولی چون دست شیخ عبدالسلام از استدلال خالی شد قصد کرد کمی جمعیت را تحریک کرد از شیخ است آره. ایشون که در منبر حتی زره تعلل در گفتار ندارند. در منبر آری ولی چون شب اول طرفین این شرط کردن فقط به قرآن و روایاتی استناد کنند که بین هر دو مذهب شیعه و سنی مقبول باشد کار برای شیخ و جناب حافظ سخت شد و دستشان خالی اه. مگر چه روایاتی مد نظر داشتند که نتوانستند ایراد کنند خب کسی در فضایل علی سلام الله علی شک ندارد ولی آقایان روایاتی تر کردند که سال هاست بر فراز منبر درباره فضیلت سایر صحابه میگویند اما اما قبله صاحب با ادله قوی آنها را رد کرد نگفتی چرا ادامه مناظره در روزنامه نیست خب چون مطالب طولانی شد ظاهرا برای آنها امکان تبع فراهم نشده است اعلام کردند در چاپ به عصر تطمه مناظره را آماده نکنند جناب خان، خوند جسارت است میتوانم مطلبی بپرسم؟ بپرسید در این چند روز شما بسیار تغییر کرده اید تحصیبی در گفتارتان نمی بینم. گویی بیشتر متمایل به جناب سلطان الوائزین هستید. نمیدانم دانم تعمدی داشتید یا خیر ولی وقتی نام علی را آوردید برخلاف همیشه او را سلام الله علیه خاندید. مثل همیشه درست فهمیده ایتا. آره. من عبدالقدیر ده روز پیش نیستم. اصلاً... اصلا چگونه تغییر نکرده باشم در حالی که میبینم جنابان حافظ و شیخ در برابر عدلی صاحب قبل مرتب رنگ عوض می چگونه تغییر نکنم در حالی که هرچه دلیل آورده می شود از کتاب های مذاهب مختلفه خودمان است ولی پدران تو و پدرانشان همه بر همین عقیده بوده و مردن آری، حق با توست تا دیشب هم این همه در بحر شک دست و پا ولی ولی وقتی صاحب به استناد ده ها کتاب از علمای خودمان که یک که آنها را نام برد حدیثی از رسول ازم خاند ناگهان ناگهانگوی هرچه درونم بود فرورید حالا دیگر این استدلال برایم بیمنی است که همه ی صحابه به یک میزان برحق بودن حدیث چه بود؟ در این روزنامه که چیزی ننوشتند؟ یا میپذیرید تمامی کتبی که برای شما خواندم همگی نوشته بزرگان مذاهب شماست ضمن این که این بخشی از کتبی بود که در حافظه داشتم در این فقره شکی نیست حال به فرمایید در نظر دارید چه روایتی ای از این کتب را برای ما و حاضرین بخانید حضرت رسول فرمودند علی با حق و حق با علی میچرخ حالا آقایان انصاف است که وقتی معاویه با علی به جنگ برمیخیزد شک کنیم حق با کی بوده؟ یا مقبول است آن دیگری در قضیه فدک شهادت علی را آن هم علی که رسول خدا او را با حق میداند نپذیرد؟ یا در ماجرای انتخاب خلیفه پس از جناب عمر ابن خطاب گفته شود، اگر کار به تصاوی کشید حق با گروهی است که عبدالرحمن در آن است در حضور علی حق با دیگریست. سبحان الله از بازی ریاضت سبحان الله جناب صاحب قبله در بین حرف‌های دو شب پیش به حدیث طیرم اشاره فرمودید ولی ولی سخن منعقد نشد اگر صلاح میدانید اکنون بفرمایید از نظر حقیر مشکلی نیست اگر آقایان خسته نیستند عرض می کنند. خسته نیستیم و آماده استاعی به شرطی که یک طرفه به قاضی نروید. در این پنج شب همه شاهدند حقیر ظریف ها را از انصاف فراتر نگذاشتند. اما حیث ته روایت هست از انصب مالک که افتخار خدمتکاری پیامبر را داشت روزی مرغ بریانی برای حضرت رسول آورد. ایشان قبل از تناول دست به آسمان بلند و دعا کردند که خدایا محبوب ترین خلقت نزد من و خودت را بفرست تا از این مرغ بریان شده همراه من بخورند پس از لحظاتی علی ابن عبی طالب در زد و وارد شد و همراه پیامبر مر را تناول کردند در فضایل علی کرم الله وجه بسیار شنیده بودیم ولی این روایت را رو ظاهرا شیعیان به تازگی جل کردند در این چند شب تندی های بسیاری از شما درباره شیعیان شنیدم ولی سکوت کردم باز هم از حق خود میگذرم. به شما را به عدل الهی حوالت میدم جناب صاحب اگر این حدیث سندی دارد که علمای ما میپذیرند خواهش دارم از کدورت ها در و ما را مستفیز کنید کدورتی نیست و برای اثبات سخنانم بعضی از دهها ها کتابی که این حدیث در آن آمده فهرست میکنن جنابان بخاری مسلم نسائی و سجستانی در سحاح خود و امام احمد ابن هنبل در مسندش این حدیث را به طرق مختلف روایت کردن گمان می‌کنم همین تعداد برای خارج شدن آقایان از بند تعصب کافی باشد. جناب شیخ. جناب حافظ. ج... چرا هر بار حضرت سلطان الواعظین استنادی می‌آورند شما سکوت می‌کنی؟ اگر نمیپذیرید؟ خب برای مزید اطلاع ما بفرمایید. اینجا و در این جمع عمومی مجال بحث درباره رجال و ربات احادیث نیست. ما سالهاست روایات خود را رو از دهان بزرگانی چون شما شنیده‌ایم. چگونه که ناز که حالا نامحرم شده اید؟ جناب نواب عبدالقادر خان. خواهش دارم اصرار نفرمایید. آنکه باید بفهمد چه شده، فهمی و آن کس که سند میخواست دریافت کرد و آنکه دنبال حقیقت بود یا در میان سخنانتان کنایه های محسوس بود ولی به پاس سیادت و مقام علمی شما آنها را نشنیده می مخصوصاً مخصوصا این که امشب آخرین است که در خدمت کجا رشیف میبرید؟ بحث هنوز به انجام نرسیده ما باید به لاهور بازگردیم که کارهای مهمی در آنجا داریم ولی حالا که کار به اینجا رسیده و بسیاری از مؤمنین درباره مطالبی که پیش از این چنیده بودند به شک افتادند جوان نمی‌کنم این چونین ترک کردن مناظره قرین مسلحت حضرات باشد خانان من و اسرار سایرین آقایان پذیرفتند چند روزی دیگر در پیشاور بمانند عبدالقادر خان برایت عجیب نیست حضرات به این سرعت قصد ترک پشاور را داشتند در حالی که در مرتبه های پیش از سه هفته نمی ماندند <تصفيق> با آنها حق میدم بیتا اگر میدانستند عالمی جوان و ایرانی این گونه آنها را در مزیق قرار میدهد هرگز به پیشاور پا نمی گذاشد. در روزنامه خواندم که دیشب صاحب قبله ادعا کردند سیصد آیه در شعل علیه نبی طالب نازل شده و ادامه بحث به امشب مکول شد آره آره من نیز از تعداد آیات تعجب کردم ولی خوب از آنجایی که در این چند شب سخن گذافی از جناب سلطان الوائزی نشیدم مطمئنم امشب نیز عدله کافی برای ادعای خود دارم پس برو کمی استراحت کن که برای مجلس امشب و بیداری تا سحر آماده باشیم این همه آیات قرآن که در شعن علی کررم الله وجه فرمودید کافی نیست که حالا مدعی وجود 300 آیه در این معنا شده اید؟ البته از شیعیان بعید نیست که برای منظورشان مفهوم قرآن را نیز تحریف کنند. بنده از شما پرسشی دارم. آیا ابو نعیم اصفهانی و ابوبکر شیرازی شیعه بودند؟ آیا سایر مفسرین مانند سعلبی، سیوتی، تبری و فخر رازی و بزرگانی چون ابن کسیر و مسلم و حاکم و عبیده بود شیعه بودند یا سنی؟ است که اینان از کبار علمای اهل تصنم هستند؟ بسیار خوب همین حضرات که نامشان را خدمت شما ارز کردم در کتابهایشان با اندکی تغییر و کم و بیش تا سی صد آیه را در شأن و منزلت علی صلوات الله علیه دانستند خوب است آقایان با کمی تأمل و تفکر سخن بگویند که موجب پشیمانی نشود جناب صاحب پس چرا این مناقب را در هیچ جا نشویدیم جناب عبدالقادر خان بله. پاسخ شما را امام محمد ابن ادریس شافعی داده است که میگوید من تعجب می کنم از حال علی چان که دشمنانش از امویها و نواسب و خوارج از بغض و کینه فضائل آن حضرت را بیان نمی کنند و دوستان هم از ترس و تقیه از ذکر مناقب خودداری می کنند قربان مظلومیتش که در حیاتش و پس از مماتش مظلوم چرا باید چنین شود که اول مؤمن به رسول الله از حق مسلمش محروم شد؟ <تصفيق> اولا خواهش دارم مجلس مناظره را به روزخانی تبدیل نکنید سانیا در اینکه علی اسبق از همه در اسلام بوده شکی نیست برای این سبقت دلیل بر افضلیت وی بر سایر صحابه نیست زیرا او در دوران کودکی اسلام آورده است بنده از شما سوالی دارم. آیا ایمان آوردن حضرت امیر در کودکی به میل و اراده خودش بوده یا به دعوت رسول الله؟ جواب شما واضح است. به دعوت رسول الله؟ آیا رسول اکرم که علی را به اسلام دعوت کردند میدانستند تکلیفی بر طفل نابالغ نیست میدانستند یا نمیدانستند؟ شکی نیست که میدانستند. غیر این صورت نعوذ بالله به حضرت نسبت جه داده ایم احسنت. پس اگر میدانستند نستجیرو نستجی رو به الله کار عبسی اند که تفلی را به اسلام دعوت کردند اما پذیرش این معنا کفر است پس قطعا علی را لایق و قابل و آماده این دعوت دانستند ولی سقر سن مانع پذیرش آلمانی که اسلام است مثل اینکه شما می خواهید لجاجت کنید شیخ بزرگوار، بار مانع سن مانع به کمال رسیدن عقل نیست بلوغ در احکام شرعی مراعات می شود نه احکام عقلی و ایمان امری عقلیست نه شرعی عجیب است که در تاریخ همین یک استثناء برای بلوغ عقلی و شرعی پیدا شده همین یکی نیست مگر حضرت عیسی در گهواره زبان نگشود و نفرمود منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیغمبر قرار داده یا در همین سوره مریم آیه دوازده در باره حضرت یهیا نیامده که در کودکی هدایت یافت و صاحب حکم ولایت شد چگونه است که طفلی در گهواره به خدا ایمان می آورد و پذیرفته می شود ولی ایمان علی در ده سالگی پذیرفته نیست به این تقدم و تأخر در ایمان دلیل برتری و بر سایر صحابه نیست اگر نیست چرا پیامبر علی صلوات الله علیه ما را به صدقت در ایمانش تخصیص میدهند پس صدقت در ایمان امر کمی نبوده است کجا چنین اتفاقی افتاده بود؟ در کجا چنین مطلبی آمده است این روایت را چند شب پیش هم خاندم اما امشب با سنت های دیگری عرض میکنم در منابع روایی مقبوله ما؟ بله در همانها امام الحرم در زخائر الاقبا و احمد ابن عبدالله هنفی از عمر ابن خطاب روایت کرده اند که روزی با ابده نزد رسول الله بودیم که ایشان دست به شانه علی زدند و فرمودند یا علی، تو نخستین مؤمن و اولین مسلمانی و جایگاه تو نسبت به من به منزلی جایگاه حارون نسبت به موسی است. ملاحظه فرمایید که علاوه بر تکرار حدیث منزلت رسول اکرم به سبقت علی در اسلام اشاره کرده حتما رسول الله به این معنا عالم بودند که درباره چنین چون واضحی در آینده تشکیک میشند گمان میکنم برای امشب کافی باشد دوستان خسته شدند نه نه ما خسته نیستیم اوه. و بحث بسیار جالبه جناب نواب اصرار نفرمایید ظاهرا آقایان تمایلی به ادامه بحث ندارند انشالله فردا شب بعد از نماز مغرب باز هم در خدمت هزرات هستیم انشاء الله